خدمت شما هر شبد باز قبل از اینکه به دلایل عقلی منکران بیاد منکران خلقت کونی بهشت و جهنم بیاد اگر بریم سراغ آثار معتزله می‌بینیم که حالا تو کتاب فرق اومده اونا باز یه دلیل نقلی دیگه هم توی انکار گرفتن که همین آیه 133 سوره آل امران بود و سوره اولا مغفرت من ربکوم و جنت ارزا هست سماوات و الارز او عدت للمتقین اونا میگن آقا او ارز بهشت متصور نیست مگر بعد از فنا آسمان و زمین به این دلیل که در واقع تداخل احساس تو یک دیگه ممتنه است. یعنی میبینید ساده بگم یه از معتظله میگن که ما بهشت و جهنم رو بهشت و جهنم کنونی رو نمیتونیم متصور بشیم به چه دلیل به دلیل تداخل اجسام تداخل اجسام بعد از فنا آسمان ها زمین صورت می, می گفته که عرض و هست و الارز با زمین آسمان هم چی میشه؟ شه؟ طبق آیات دیگه ما داریم دیگه اینها. در واقع این بحثی که فروپاشیده می شن دیگه این نظام نظام دنیاوی ببینید پاسخی ما به اینها ها تو آیه اومده عرض و هست و الارز آیه می خواد بهشت رو بگه نه که واقعا میگه بهشت تمام عرض آسمان ها و زمین هستا ببینید اینا اصلا خداوند نمیخواد بگه تقریب به ذهن داره به ما میگه اعتقاد ما اونه که بودن بهشت جهنم تو آسمان و زمین مستلزم اینه که زمان قیامت بهشت جهنم متلاشی از بین میرن درسته؟ خداوند از باب تقریب به ذهن گفته نه که بگه خدمت شما عرض شود که بهشت تمام ارض آسمان‌ها و زمین هست. یه کاری که دیگه کرده بودن، یه دلیل دیگه که معتزله آورده بودن این بود. حالا توی کتاب به این اشاره نشده شما دقت کنین خداوند از باب تقریب به ذهن مثلا می‌خواد وسعت خدمت شما بهشت و جهنم رو بگه اون چیزی که برای ما خیلی عریض و طویل هست این آسمان‌ها و زمین هست دیگه. تقریب به ذهن سخن را فرموده است. خب حالا دلایل نقلی که شما می‌بینید معتزله اشاره کردند این دلایل نقلی رو طبیعتاً با دقت توی سیاق و در واقع ظاهر ظاهر آیات و توجه به قرآن‌دگی می‌تونستیم رد کنیم خب ولی دلایل عقلی رو ما اشاره می‌کنیم یکی از دلایل عقلی ایشون گفته که از میان دلایل عقلی منکران مسئله ابس بودن آفرینش بهشت و دوزخ قابل ملاحظه است حالا اونا اینجوری گفتن هدف از آفرینش بیشت دوزخ اینه که نیکوکاران و بدکاران درانجا به سزای اعمال خودشون برسند و این کارپس از برپای قیامت انجام میگیرد گیرد بنابراین آفرینش ها پیش از قیامت عوض خواهد بود یعنی معتزل میگن آقا آفرینش بهشت و جهنم قبل از قیامت ابسه طبیعتا از خداوند حکیم نیز کار عوض سر نمیزنه. یعنی گفتن که هدف از آفرینش به جهنم دادن پاداش و اقاب به نیکوکاران و بدکاران هست این کارم بعد از قیامت در واقع پس از قیامت متصور هست آفرینش پیش از قیامت عبس و بیهوده است. خب ما الان پاسخهایی داریم آن چیزی که هایت الله سبحانه می میگه اینه که آقا ما مساله خیلی از امور را نمیدانیم صرف اینکه مسلحتها را نمیدونیم نبای بگیم عباسخ است چون برای ما همه جوانب مسائل روشن نیست شاید توافرینش اونها مسلحتی باشد و خارج از درک ما باشد نکته دیگه همیشون میگن میگن گذشته از این آماده کردن یک چنین مکان نعمت و یا نقمت در روح انسان مطی تاثیر شگرفی میگذارد و او را به اطاعت و پیروی از توالیم الهی بیشتر سوق میده و به یک معنا در لطف الهی نسبت به بندگان تاثیر به سزایی دارد ببینید بس تربیتی را مطرح میکنم خدمت شما هر شود ما بخویم ساده تر بگیم اینه که یعنی بگیم اینه که تبینم حکم به عوض بودن خلقت بهشت و جهنم نیازمند علم قطیه نیازمند علم قطعی به عدم ترتب فایده برای اونها هست که معتزله دلیلی هم بر این علمه ندارن. ما فایده وجودی خیلی از عمر رو نمیدونیم اما نمیتونیم بگیم اونها لغو و بیهوده هستند. باص دیگه من این بود که اعتقاد به مخلوق بودن بهشت و جهنم آثار تربیتی فراوان داره این توی روحی افراد موثره ببینید یعنی ما گاهی اوقات می‌بینیم که می‌گیم گذشت کنیم می‌گیم بگذریم از آدما یا می‌گیم گران فروشی نکنیم کاسب هستیم دیگه چون می‌دونیم یک سرای اخروی هست اینا بهش توجه می‌کنیم بعد خدمت شما عرض شد که یه نکته دیگه علمای ما گفتن شیخ مفید اگه اشتباه نکنم تو کتاب مسائل الاکبریه اشاره میکنه که اگر شما دارید میگید که این ابس بود و اینا ملائکه ملائکه در واقع چی هستن ملائکه ساکن الان بهشت و جهنم هستن منظور نیست که یه ملائکه جهنمی هستن اونون خازنان جهنم درست نگهبانان اون میگه یعنی ما موجوداتی رو داریم که الان تو بهشت و جهنم هستن اونم جناب شیخ مفید لحاظ کرده است خب یه دلیل عقلی دیگه‌ای هم وجود داره که نویسنده باز به اون اشاره نکرده اینه که بحث اینه که آقا استدلال دیگه که یه سری از معتزله آوردن بحث لزوم قرار گرفتن بهشت و جهنم تو عالم افلاک یا عالم عناصر یا عالم دیگه هستا حالا توضیح توضیحش اینه که تفتازانی این رو از قول معتزره توی شرح مقاصد آوردن که جناب تفتازانی گونه میگه که استبلاد دیگه معتزله اینه که اگر بهشت و جهنم همکنون خلق شده باشن یا باید تو عالم افلاک باشن یا در عالم عناصر باشن یا تو عالم دیگه ایش بعد معتزله میگن آقا عالم افلاک نمیتونن باشن چون خرق و خرق افلاک لازم میاد و لازمه که بهشت و جهنم تو عالم عنصری باشن یعنی عالمی که عالمی که از چهار تا عنصر آب و خاک و آتش و باد هست از اونورم عالم عنصری در واقع گنجایش بهشتی که ارزش مثل ارز آس... آسمان ها و زمین هست رو نداره و لازمش میشه تناسخ یعنی بازگشت روح به بدنیه که تو عالم عنصری هست دیگه اگر بدنم اگر بهشت و جهنمم تو عالم عنصری باشه روح باید به بدنی که تو اون عالمه عالم هست برگرده که اینو ما قبلا بهتون گفتیم دیگه از تناسقا این آلم رو ما نمیشناسیم اینو جناب اباد عباد از معتظل این قول رو گفته ببینید اولا این بحثی که شما در مورد عالم افلاک میگید این حیعت بطلمیوسی و اینها رد شده است خرق افلاک کسان بحث نیست کسان ما بگی تناسخ رو میده و از طرف دیگه هم ما باید دقت کنیم این که بهشت و جهنم تو عالم دیگه باشه هیچ اشکالی نداره ما از اون خبر نداریم درسته ما از اون خبر نداریم ببینید به هر حال می بگم دست و پا زدن های بیش از حد، که می اثبات کنن که چیه بهشت و جهنم آفریده نشد اینم البته یت از معتزله میگن خب جدا از این مباحث خدمت شما عرض شد که ما سراغ مکان بهشت و جهنم جایگاه بهشت و جهنم که می رویم اینجا اقوالی وجود دارد که نویسنده بهش اشاره کرده است حالا پس از اون که ما به اثبات وجود فعلی بهشت و جهنم مخلوق بودن اونها در واقع رسیدیم سال پیش میاد که اون دو تو کجای عالم واقع شدند؟ ببینید بعضی از متکلمان اسلامی یه دشون نظرشونه که دلیل قطعی و نص سریح برای تعین مکان بیشت جهنم وجود نداره و اون چه که از دلایل نقلی در واقع ارائه شده است در حد ظهور هست یعنی شما نمیتونین نص نمیگیرید قطعی نیست مثلا شما این آیه و لقد راهو نزلتا اخرى اِنَّ سِدْرَتِ الْمُنْتَهَا انه جَنَّةُ الْمَعَوَى که گفته بهش نزد صدرت حالا اینکه جن به اون هست نزد اون هست جایگاه صدرت المنته ها در واقع و حقیقتش برای ما روشن نیست در حقیقت در محاق ابحام هست اینو ما بهش توجه کنیم حالا یه وقتی ما نگاه میکنیم افرادی که ذکر میکنن مثلا به ایک روایاتی اصطناد کردن که جایگاه بهشت بالای آسمان های هفتگانه هست تنان که میگن تو گولدس پیامبر اومده که فرمودن سقف بهشت عرش خدا هست و جایگاه جهنم هم زیر طبقات زمین هست ما ببینید اینجا باز نمیتونیم اسحار نظر قطعی کنیم علم اون رو باید به خداوند واگذار کنیم بیشتر شما وقتی نگاه می‌کنید، بیشتر دانشمندانی که حالا تأکید دارن که آنه مکان بیشت و جهنم رو یک جورایی بازگو کنند با استناد به آیات و روایات اون رو فوق آسمان های هفتگانه و زیر عرش دونستان کم این آیات 14 و پونزهامه همون سوره نجم و اینها رو لحاظ میکنن که صدرات المنتقه فوق آسمان هفتمه که حالا شما برید تو تفسیرا رو مشاهده کنید. آیه 22 سوره حاقه و دهم ده غاشیه هم در اثبات این که بهشت نزد صدرت المنتهاست در واقع مورد استناد بعض از مفسران مثل صادقی تهرانی در واقع, واقع شده که شما وقتی نگاه میکنید بهشت به وصف فی جنت عالیه توصیف شده و اینها گفتند که عالی بودن بهشت اینه که بهشت نزد صدرت المنتهاست پس از مرتبه اولو ورخوردار هست حالا اینکه جنت معوا باز کدوم بهشت هست اختلاف نظر وجود داره بهشت جوابیدان یا جنت الخلط هست که در واقع در انتظار تمام احل ایمان و پرهیزکاران بوده محل اونم تو آسمان ها دونستن که تا یه نوزدام سوره سجده می فله هم جنت معوا نوزلن به ما کانوی عملون اینو شاهد گرفتن بعد ببیند هر کدوم از این افراد برحال اومدن تأکید کردن حالا مثلا به بعض از روایات اومده جایگاه بهشت رو در آسمان و دوزخ رو در زمین معرفی کرده که شما وقتی نگاه میکنین از اکرم نقل شده که اکرم هم یک شخص کذاب بوده دیگه روایتش قابل استناد نیست خدمت شما ارشت شود که یه دم میگن با توجه به آیاتی که عرض بهشت جاودان رو آسمان ها و زمین معرفی میکنه در واقع ما نمیتونیم خدمت شما هرچه شود حالا استناد حالا قطعی کنیم چون آیات این آیات در واقع نشان میدن که جنت المواه تو آسمان بوده و غیر از بهشت جاودان هست بهشت جاودان وسطش به تمام میگن اندازه تمام آسمان ها زمین هست دیگه که به هر حال میگن که جایگاه ویژه ای اینها بعضی جایگاه ای از بهشت رو مطرح میکنن که در کنار صدرت المنتها هست، محل خاصان و مخلصان هست. بعضیا میگن آقا این بهشت رو بگیم خدمت شما هر چه جنت المعوا رو ما میگیم همون بهشت برزخی و معراج ببینید به هر حال ما هر کاری کنیم خدمت شما هر اینجا راحت نیست. همون که گفتم بهتره که ما میگیم اینا در حد ظهورات هست نس نیست. ما نمیتونیم اینا رو قطعی بگیریم. آدمشا این شکلی برویم جلو درستتر باشه مثلا خدمت شما عرض شد خواستید برید توی تفسیر نمونه این آمده است که صحبتی که صاحب تفسیر نمونه دارد که بس محیط بودن را مطرح میکنه که ادعی هم ایشون بیان کردند عالم آخرت و بهشت به و دوزخ محیط بر این عالم هست مثل در واقع عالم جنین که در درون عالم دنیا هست ما ما میدونیم عالم جنین برای خود برای خودش یه عالم مستقل هست اما جدایی از اون آلمی که تو اون هستیم نمی باشد بلکه در درون اون هست یعنی تداخل دو میشه دیگه عالم دنیا هم نسبت به عالم آخرت همین حال رو داره یعنی تو درون اون قرار گرفته پس دوزخ هم میتونه محیط بر این جهان باشه و بهشت محیط بر آن و از اونم وسیتر است حالا این مطلبی که اینجا لحاظ شده است. علامه مجلسی هم میگه که آقا ایشون میگه دیدگاه کلی رو میگه که خدمت شما عرض شود که جایگاه کجا هست میشه ایشون میگه از روایت استفاده میشه میشود که بهشت بالای آسمان های کانه و دوزخ در طبقه هفتم زمین هست که ایشون میگه نظریه مرتقب قبول اکثر مسلمان ها همون واسه که من بهتون گفتم بهتره که ما کار کنیم بهتره اینها رو خدمت شما هر شود در, در حد ظهورات بدونیم و قطعی ندونیم و علم اونها رو به حق آلا واگذار کنیم خدمت شما هر شود که یه بحثی رو مطرح میکنه نویسنده با عنوان جهان مستقل جایگاهی لازم ندارد ایشون میگه که خدمت شما ارد شود که سؤال از جایگاه بهشت و جهنم در صورتی صحیحیه که دران جزئی از این جهان باشد به گونه که بتوان میان آن دو و این جهان نسبتی برقرار کرد شما میگه اگر اینجوری باشه ما میتونیم سؤال کنیم که بیشت و جهنم در کجا این جهان قرار گرفته اگر بهشت و جهنم رو تو جهان مستقل و منفک از آسمان و زمین بدانیم پرسش از جایگاه اون کاملا غیر است. اگه ما بگیم هیچ رفتی به آسمان و زمین ندارد غیر صحیح هست بعدیشون یه بحث زمان و مکان را به لحاظ فلسفی مطرح می کند که آقا از نظر مباحث فلسفی زمان واقعیتی که از تحول ماده پدید میآید. آید حرکت ماده رو ما میگیم دیگه حرکت ماده هم تدریجیه که اینجا در واقع دو تحقیقت هست یکی حرکت و دیگری زمان و ماده حالات و صفات گوناگون پیدا میکنه حرکت هم در واقع ناظر به دیگرگونی تدریجی نه یعنی دفعی پس به این خاطر فلاسفه میگن که حرکت و زمان دو رویه یک سکه هستن هر کدوم ناظر به واقعی، واقعیتی می باشن که تو جسم متحول وجود دارن مکان هم در واقع جایگاه جسم دیگه تو اجزای جان قابل تصوره ببینید ما اگر ع... مجموعه جهان رو در نظر بگیریم دیگه ظرف دیگه برای اون ظرف, ظرف مکانی وجود نداره بلکه آفرینش خود این جهان هم سازنده جای خودش هست اگر مجموعه این رو بگیریم می... داریم می‌خوام این جهان خودش دیگه اینجا بی‌معنی میشه یعنی آفرینش خود این جهان سازنده جای خودش است نه اینکه قبلا جای فارق و فضای لاموتنایی وجود داشته باشه بعد خدا این جهان را تو دل اون فضا قرار بده که خدمت شما هر شود این که کاشف نظری نسبیت نسبیت فیزیکی میگه که معتقد به گسترش و فوزونی ماده بوده یعنی جهان پیوسته در حال بزرگ شدن هست مثلا نظام بادکنکی که مطرح کرده که ما در آیه 47 سوره زاریاد داریم و سما و سمای بنیناها به ایدن و انا لموسه اون در حقیقت ما میگه آسمان ها رو به قدرت برافراشتیم و خودمونم گسترشش میدیم. این گسترش و فوزونیه در حال مطرح هست. به این خاطر جهان با گسترش خود مکان خودش رو هم میسازه و نیاز به مکان قبلی نداره. ببینید جهان نیاز به مکان قبلی نداره. این رو ما میتونیم برای بهشت و جهنم هم مطرح کنیم یعنی چی یعنی اگر بهشت و جهنم برای خودش جهان مستقل و جدا از آسمان و زمین باشد سوال از محل و مکان اون کاملا غیر منطقیه البته ایشون میگه من نمی‌خوام بگم که اینا تو دل هم دیگه هستن به بهشت و جهنم در واقع مثالی و خیالی نمی‌خوام بگم اینها تداخل در هم دارن ایتلا سبحانی اون نظر عرفا رو نمیپذیره میگه من اینو از بود علمی میگم یعنی ایشون هم پایین صفحه 374 میگه میگه ما در این تصدیق به معاد انصاری و به اصطلاح امروز معاد مادی دو جوان مستقل فرض میکنیم که هر کدام برای خود احکام و قوانین و اوضاع و نسبتهایی دارن و هرگز یکی در دل دیگری نیست این رویشون مطرح کرده خدمت شما عرض شد که به همین خاطر اگر ما بخوایم بگیم دقیق تر بگیم آقا با توجه به دلایل متعدد قرآنی روایی بهشت و جهنم مکنون وجود دارند دلایل منکرانم ناتمام هست در مورد مکان بهشت و جهنم یک گروه اومدن توقف کردند علمش رو با خدا واگذار کردند یه دم گفتن که مکان بهشت بهشت, بهشت در واقع فوق آسمان هفتم و زیر عرش نزد نزد صدرت المنتهی است مکان جهنم هم در واقع در زمین یا در طبقه هفتم زمین بیان کردن یه اده هم گفتن که مکان بهشت و جهنم در باطن این عالم هست هم واسه که گفتی و میگن و علم جزئیاتش رو لازم ندونستن یه بحث فلسفی هم که اینجا مطرح شد اینه که آقا اگر مجموع جهان رو در نظر بگیریم دیگه برای اون ظرف و مکانی وجود نداره بلکه آفرینش خود این جهان سازنده جای خودشه و خدمت شما ارز شود که دیدگاه نزدیک اگر ما بخوایم خیلی دقیق تر بگیم اینه که بهشت و جهنم رو محیط بر این عالم مادی بدونیم شاید به این نکت قائل شویم، حالا توی کتاب نیومده این به این نکت قائل شویم بهتر باشد. همونطور که شما امینید توی آیه 49 سوره توبه و آیه 54 سوره انکبوت آمده است و اینه جهنمه لمحیتتون بالکافرین که اینجا بس احاته جهنم بر کافران مطرح شده. حالا توی منابع تفسیر اومده احاته ناظر به احاته در قیامتها اما بعضی اومدن گفتن که مثل امین اصفهانی خواستید برید ببیند توی تفسیریشون. میگه با استدلال به اینکه که محیط غیر از ماهات هست. محیط باید باید بیل موجود باشد تا احاته نیز بیل فعل صدق بکند. آیه دلیل بر وجود فعلی جهنمه. بعضی میگن آقا عبارت رو به معنی حقیقی باید بگیریم. جمله به لفظ مزاره و مستقبل نیست بلکه از زمان حال خبر میده اونم ناظر به باطن دنیا است میگن آقا کفار در حیات دنیاویشون در وسط جهنم فرو رفتن هرچند به خاطر هجاب های دنیا تأثیر اون رو نمیفهمن علامه تبا تو تفسیر علمیزان جل نه صفحه سی, ش... سی میگن که حمل آیه برعهاتی بیل نه در آینده یکی از وجوه ممکنه و آیات دال بر تجسم اعمال هم در واقع معید این نکته است. یعنی ببینید شما وقتی بگید که بهشت و جهنم موجود هستند، اما نظام حاکم بر اونها غیر از نظام دنیوی است در این صورت اشکال پیش نمیاد که وسطت شبهنازه آسمان ها زمین و محیط بر این عالم باشن ببینید بس محیط بودن ها چو وقتی این بحث محیط بودن رو مطرح کنید درست می شود یعنی تضاهم میان عالم دنیا و مادی، دنیاوی مادی عالم روحانی مجرد رخ نمیده. در واقع آخرت را شما در نظر می گیرید محیط هست محیط بر دنیا می شود. دو جهان به تعبیر مستقل. اگر شما بحث محیط را اینجوری معنی کنید فکر می کنم این خلق کنونی بهشت و جهنم دقیق تر تبیین می شود. امیدوارم مطالبی که ما گفتیم یک،, یک گام و در واقع قدمی بوده باشد در فهم معارف قرآن کریم به ویژه آیات معاد. از همه شما سروران گرامی تو این ماه مبارک التماس دعا داریم و همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.